والدليل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد قسمت اول که گپ و گذش پیرامون صحبت کردیم توضیح دادیم در بحث اینکه خداوند خالق و رازقه به هدف از آفرینش و خلق و ایجاد این بوده که ما ازش اطاعت بکنیم عصیانش نکنیم هدف این بوده همونطور که گفت و من عصاهو دخل النار فمن اطاعه دخل الجنه و من عصاهو دخل النار خدا من خ... ما رو خلقت کرده و هدف از خلقتم این بوده و آیاتی که جلسه درسی هم بحث شد که نشانه و دلیل بر این هست که ما هدف از خلقتمون هدف از اینکه پیامبران برای ما فرستاده شدن توحید عبادت بوده مفصل قدس گوییش صحبت کردیم اینجا ادامه بحث گذشته است ولقد بعثنا في كل أمة رسولا هر امهتي پیغمبرانی بودن برای چی الله قسمته اول عبادت اولو بپرسیم و این عبادت را برای غیر خدا انجام ندیم ان اعبد الله, أول الله واشتغ بالطاغوت الان بحث اشتغال طاغوت چطور ما از طاغوت دوری بکنیم مثلا بحث طاغوت کیه و چی هست بعدا مفصل لكن کن اینجا ان الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته أن الله لا يرضى خدا راضی نیست که کسی همراه خداوند براش شریک قائل بکنه شریک قائل بشه خدا ما راضی نیست انا اغنى و عن خدا من در حدیث قدسی بیاد من غنیترین شما از شرک یعنی من شرک قبول ندارم کسی با من شریک بشه یک کسی را با من شریک بکنه در اون عبادتش در اون دعاش من عمل عملا أشرك معي فيه غير تركته أو تركته وشركه أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنا أغنى شركاء عن الشرك غني ترين شو الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غير تركته وشركه كسيج يتعامل رأ أنجوم بدهون عمله شو بمن كسيجك شريك بكونه من خده شو عمله شو رهابي كنا شو الخد من راضي و آیاتی که در قرآن مده از بحث برایت خداوند شر و نارضایتیش در قرآن زیاده مثلا فرموده خداوند انتكفر فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر خداوند كفر برای شما راضی نیست دوس نداره برای شما یا خداوند در قرآن گفه انترض و عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين خداوند كفر نمغسيات نشر این اعمال ناپسند را دوست نداره ازش راضی نیست چی را دوست داره اون چیزی که مخالفشه طاعت و عبادت رو خداوند دوست داره اینو از ما خاصه بس ان الله لا يردى ان يشرك مع معه احد في عبادته خداوند دوست نداره کسی در عبادت کسی با خداوند شریک بکنه یعنی در اون عبادت ما برای خدا شریک قرار بدید عبادت ما دونو داریم عبادت یا اینکه اون عبادت دعا هست که میگن دعای مسئلت یا اینکه عبادت اون طاعتی هست که ما انجام میدیم برای خداوند مثلا نماز خوندن روزه گرفتن این طاعت ها انجام دادنش یک عبادتی هست برای, برای, برای ماها محسوب میشه پس فلا یا بگیم دعا دو نوعه یا بگیم عبادت دو نوعه هر دو تاشون علامه تعبیر ازش میکنن دعای مسئلت و دعای عبادت یعنی خود همون عبادت هم برای خودش اینو دعا هست و بعضی ها میتونه تعبیر میکنن اونجا از تعبیر از دعای مسئلات به عنوان یک دعای مطلق یاد میکنن و از اونجا از دعای, مس... دعای عبادت به عنوان یک عبادت حالا این تفریقش در فرموده خداوند چنین آمده. یعنی بحث الاو ربش با این آیه‌ای که اینجا بهش استناد میکنه و ان المس و المساجد لله گفت و قال ربكم ادعوني استجب لكم و قال ربكم ادعوني دهای چی هست مسئلات دعای هس مساله یعنی خواستن از خداوند دعای مسئلات خواستن از خداوند و قال ربكم ادعوني استجب لكم و علما در تفسیر این استجب لكم دوتا تعبیر گفتن گفتن استجاب لكم یعنی استجابت میشه دعات و تعبیر دیگری یعنی هم از استجابت شده که عذابكم الله یعنی علی هذا الفعل خدابا ثواب بهتون میده پاداش بهتون میده حالا ما کارو این تفاسیر و ترجیحاتش نداریم اون چیزی که برام اومد تره ادامه ای آیه هست قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي ان الذين يستكبرون عن عبادتی اونهایی که استکبار می‌ورزن از عبادت من آیه او اول اون قایه قبلی بحث چی بود بحث دعا بود قال ربكم ادعوني طب بعد گفته مرا از, از من بخواهید از من بطلبید مرا صدا بزنید اونهایی که استکبار می‌ورزن از چی از عبادتم این عبادت چیه دعا امام که رسول الله صلی الله علیه و سلم بفرما ادعاء او هو العباده ادعا خودش عبادت بس دعای مسئله نوع خودش در ذات خودش اینو نوع عبادته ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم تاخرین اینا جایگاهشون اونهایی که استکبار میورزن نمیخوان مستقیما از خدا بخاهن اونها جایگاهشون جهنم خدا بنده چون خداوند هیچ وقت از شر رازی نمیشه نه هم از مشرکین طب الان ربطش ربطين قضيه ان الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل قالوا ان دوره بحثش قايم گفت بحث چرا انجا مؤلف ميگه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل قايم به بريك البحثي كده در اين آيه هست المساجد لله فلا تدعو مع الله احد ايه قاعديه شما در صرف و نح ميخونيد نفع لا وقتی که بیاد لایه نافیه یا ناهیه و بعد از اون نکره بیاد اون نکره در مرک برعموم داره مثلا اینجا میگه و ان المساجد لله فلا نهیه درسته تدعو مع الله احدا این احدا چیه؟ نکره هست یعنی هیچ نوع، هیچ کسی چه میخواد؟ پیامبر خدا باشه چه میخواد؟ فرشته باشه هر کسی حق نداری برای خداوند اون شخص و شریک قرار بدید فلاتدعا مع الله احد و این یه قضیه قسمت بحث که استدلال میشه بر چی لا ملک مقرب ولا نبی مرسل یعنی حق نداری که شرک به خدا بیاری برای خدا شریک قائل بشی و حق نداری اون شریکت رو نه پیامبر قرار بدی و نه ملاک قرار بدی و نه کسان دیگر. چون اصلا کلا ذهن بشریت این که وقتی کسی را قوی می‌بینه قدرت من میبین قوسم پیامبران خداوند بند همونطور که در قوم نوش رخداد در قوم نوش رخداد اشخاصی صالح اون انفین فرق خدا بند در قرآن یاد ازشون و وقالوا لا تذرن آلهاتكم ولا تذرن ودن ولا سواعن ولا یعوق ولا یغوث و یعوق و نسره اینها پنج نفر ابن عباس میگه اشخاص صالح بودند اشخاص مؤمن متقی بودند که فوت شدند هم تو کتاب صحیح بخاری اومده اینها فوت شدند بعد شیطان اومد برای برای اونها کرد گفت که اینها اشخاص صالح بودن پاک بودند دعاشون اجابت می‌شد ولی شما ناپاکی دعاتون اجابت نمیشه. بیایید اینها را واسطه قرار بدید بیاید مثلا یک تصویر از اونها بکشید یادگاری، یادواری از اونها داشته باشید بیاد اونها باشید شاید به شفاعت اونها به شفاعت یاد اونها خدا دعای شما را سجابت بکنه کم کم به مرور زمان این تصور ذهنی تبدیل شد به چی؟ به شرک به واسطه قرار دادن اونها را واسطه قرار دادن بین خودشون و خالقشون همطور که خداقن زیاد از مشتکین در قرآن نقل بحث شفیق قرار دادن مشرکین اون واسطه ها شد اون واسطه هایی که مثلا از مرده بوده یا بوت بوده هر کسی بوده یعنی شاید مثلا یک شخصی به تون بگه اینها که مشرکین که بوت میپرسیدن مرده که نمیپرسیدن خیلی نه که نه تنها بوت را میپرسیدن بلکه خیلی از مشرکین مرده را میپرسیدن همونطور که نست سریع در سوری اعراف داری خداوند. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيب لكم انهای که ان الذين تدعون من دون الله انهای که صداشون میزنید به غیر از خدا دعا هست عبادت اونها میپرستیدن تدعون دعاوث بحث درخواسته درخواست است کی بندگانی مثل خودتون ان الذين تدعون من دون الله عباد کن. فدعو هم فدعوهم ازشون بعد خداوند جالب اینجاست که چگونه سرزنش میکنه نکوهش میکنه بر اونها بعد دیگه الهم ارجل ان یمشونا بها فدارن زیر خاک راه برن ام لهم دست دارن از زیر خاک بیرون بیان ام لهم اعینا یبصرون بها چی اشترا میتونن با چشم خودشون از زیر خاک گل پاشششون باز باشه از زیر خاک میتونن ببینن عقل انسان میتونه بگه کسی زیر خواب،, از زیر خواب ببینه ام لهم اذانون یسمعونه یا گوشت دارن که میتونن بشنبن بحث که یه جا بحث بطه تمیتونه میشه گفت به که گوشت داره چش داره بخی بحث بندگانی هستن که واسط قرارشو میدادن بحث بطه نیست و خداوند سریش میگه جای دیگه و یعبدون من دون الله و یعبدون عبادات. الذين ابتدعوا في الدين هم دعوا وما ي... يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الله رقب الله حسن اينا چين اينا شفيق ما هستند شفاعتگر ما هستند اينها دعاي ما رب به خدا ميرسونند سبب و وسيله استجابة الدعاء ما هستند پس اينها شرك دار چه شرک در عبادت مشرک شدن بعضی میگن که چطوره که برای زنده درسته که ما بگیم برای ما دعا بکن ولی برای مرده درست نیست برای مرده درست نیست چون خداوند شنیدن و دیدن از مرده نمی کرده آیا مرده میشنبه میبینه این آیه به سراحت بیانگر چی هست بیانگر این هست که اون مرده که زیر خوابیده نمیتونه تونه بشهبند ببینه بنده مثل ما هست ان الذين من دون الله عباد امثالكم بندگانی مثل شما هستن وقتی که هم میاد استینکار میکنه بر ما با این روش الهم ارجل یمشون بها ها دارن که رابره یعنی چی نه ندارن ام لهم ایدی یقطشون بها دست به کاری که خوب نم بیان خیر دارن ام لهم اعین یبصون نه ندارن و این آیاتی که به این معنا اومده آیاتی که در قرآن به این معنا اومده زیاده مثل فرموده خداوند و ما انت بمصنع من فی القبور خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلام تنمی تنی صدا تو به بشنوانی انک لا تسمع الموت تو نمیتونی صدات تو به بشنوانی بله شبهاتی هست پس چرا رسول الله صلی الله علیه و سلام بر سر غدال بدر قریب بدر ایستاد با مشرکین سخن گفت صدا ای ابو جهلی بحث مفصله من نمیخوام این مسئله رو خیلی زیاد باز نکنم فقط این شوخه رو پاسخ میدیم خیلی کوتاه و خلاصه رسول الله صلی الله علیه و سلم جاهای خداوند قدرت ها و توان های خارق العاده بهش میداده اینجا بعید نیست این قدرت خارق العاده ای بوده و یک معجزه معجزه‌ای بوده برای رسول الله صلی الله علیه و سلم که ابو جهل اسباب توبیخ و دیگران از قریش بشنوه به خاطر همین وقتی که و خطاب اومد گفت: یا رسول الله چطور صحبت میکنیم با مشرکین اینی که مردن؟ اونا نمیشنون. آیات قرآن را چنین عمر فهمیده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم به عمر فرمودند: ما, ما انت بمسمع یا عمر ما انت بمسمع منهم الان. الان شنوا نتابیسی. الان نیسی الان است. هر چیزی که میشه پاسخ داد برای دیگه، وقتی که مرده در قبر خوابونده میشه، وقتی که روحش از بدنش کشیده میشه دوباره برای حساب و کتاب برای سو... برای و جواب از منکر و دوباره روح به اونها برمیگرده و اون مرده که در قبر صدای پای دمپایی های اطرافیانش قرع ان عالسون صدای پای دمپایی ها رو میشنود صدای پای دمپایی پاییه میشنوه مرده زیر خاکه ولی میبینه صدای اونها رو میشنوه خیر نمیموجد طبیعیه کسی که مثلا بالفرض در یک اتاق مثل اینجا به سر میبره کسی اگر از بالای سقف عبور بکنه صدای پا رو بشنوه ولی صدای اون اشخاص اگر بالای سقف خونه صحبت بکنن چطور میشنوی؟ شرع اومده یک صدای خاصی بعضی‌ها شرط مثلا این شبهه رو مطرح بکنن پس چرا وقتی که ما قبرستان میریم میگیم که السلام علیکم اهل القبور اهل دیار المؤمنین؟ بله حدیث را که دوم بکنین بخونید مشخص میشه سلام اولا دعاست عبادت مگه لازمه که مرده بشنوه؟ خیر لازم نیست که عمرده بشنوه. به خاطر همین در دنباله این اومد یغفر الله لنا ولکم. خدا ما و شما رو بیامورزه. بس دعاست. سلام بر شماها باشه. و رسول... رسول الله صلی الله علیه و سلم. به خاطر اینکه این چنین شبهه‌ای تو ذهن انسان نیاد، اومده یک سری حرفا و سخنها را به ما گفته. تا اینکه در شبه نیفتیم و خیلی جالبه مثلا در زمان امام زین العابدین شخصی میاد کنار قبر رسول الله یک بار دو بار، سه بار تکرار میکنه اومدن سلام کردن به رسول الله بعد میگه ای فلانی چرا این قد میری این قد سلام به رسول الله میکنی میری و میاد که میام که سلام بکنم اگر سلام کردن بده گفت که والله قسم والله و ابرلدی بالاندلس ایلا لسوا قسم میخورم که تویی که اینجایی با اون کسی که در اسپانیا هست اندلس هست با هم فرقی نداری چرا پاسخش رسول الله میده علیه الصلاه و السلام رسول الله صلی الله علیه و سلام میفرمایند کسی نیست بر من سلامی بفرسته مگر اینکه ملکی از ملائکه موکل بر اینکه سلام شماها را بر من ابلاغ بکنه یعنی تابعین نگاه بکنید اینطوری قشنگ و واضح میان توضیح به میدن که ما در شفه نیفتیم که فکر نکنین که سلام کردن بر مرده یعنی اینکه مرده واس سلاممون بشنوه خیر اینطوری نیست رسول الله صص رفت شفه کرده ملائکه موکل نه اینکه شما مستقیما وقتی که میگید سلام بر مرده سلام علیکم یعنی مرده میشنوه خیر ملائکه موکلن هم بر رسول الله کلم بعد رسول اللہ اینجا که ملکی که این سلام را بکنه به اللہ صلی الله علیه و سلام در دنیای برزخ الان چه ربطی داره این دو تا قسمت المساجد لله مساجد مال خدا با قسمت دوم فلا تدعوا مع الله احدا، کسی با خدا صدا نزن برای ما یک برداشت خیلی جالبی دارن میگن اینجا مساجد مال خدایونه کسی شک نداره که دعای عبادت خود عبادت نماز کندن و روزی گرفتن کسی شک داره که که این نباید به کسی غیر از خدا انجام بشه کسی شک داره تو این هر کسی اعتقاد به این داره که نماز باید, باید برای خدا باشه کسی در این مسئله مشکلی نداره چی میخواد در مسجد چی میخواد خارج از مسجد نماز مال خداست درسته؟ فلا تدعو الله احدا اینجا اومد اونجا دعای عبادت اینجا اومد اینجا اومد دعای مسئلت فلا تدعو صدا ندن یعنی همونطور که تو در مسجد نمازت برای خدا میخونی پس دعای خودت اما همونطور چی کار کن چه در مسجد چه خارج از مسجد فقط خاصی که قرار بده خاص الله قرار بده فلا تدعو الله احدا و ان المساجد مساجد مال خدا در اونجا فقط برای خدا نماز میشه پس دعای خودت دعای مسئلتی که دعا خودش عبادتی که راست گفتی رسول الله میگه دعا هو العبادت این نوع دعای مسئلت این نوع عبادت مسئلتی که مسئلت درش هست خاصا درش هست از خداوند برای غیر از خدا منصرفش نکنید واسطه درش قرار ندید و المساجد لله فلا تدعو مع الله احد، یعنی کسی در اون دعا با خدا شریک مکن خدا را یک تا قرار بده در اون دعات. فقط خدا را صدا بزن شما نیا بکنید چقدر بیعدبی هست چقدر بیانصافی هست چقدر بگم بیشعوری هست در این که انسان خداوند بگه که من میشندم و میبینم حتی مور چه ریز سیاه رنگ در شب تاریک در دره تاریک روی سخره سیاه رنگ بعد بیاد انسان کسی را صدا بزنه که در قب خوابیده کسی که از زندگیش باخبر نیست کسی که از آینده باخبر نیست مگر کسی جز الله جل شأنه از آینده باخبره قل كنت علم الغیب لسترت من الخير وما ما سن رسول الله صلی الله علیه و سلام می اگر من علم غیب داشتم کار نیک را زیاد انجام میدادم و شر به من نمی رسید مگر نرسید ضرر به رسول الله صلی الله علیه, علیه, علیه و در جنگ بعد مگر اموش کشته نشد در جنگ احد زخمی؟ پس خودش سر شکاف نیافت نزدند. ما نید خداون در این آیات نظم میکنه علم غیب از رسول الله علیه الصلاه و السلام. اگر قراره که رسول الله صلی الله علیه و آله شریف ترین مخلوق خداوند ندونه از آینده از علم غیب با خبر نباشه. دیگر مخلوقات میدونن. حس و بكل کس ندونن. خب چطور ما وقتی که کسی که از آیندهمون با خبر نیست نمیدونه این چیزی که ما میخوایم به مصلحت ما هست یا نیست من از خدا میخوام ماشین بهم بده از کجا معلوم این ماشین بد ندارم چند دقیقه دیگه تصادف نکنم و نمیرم خدا میدونه کی بده و چطور بده و برای کی بده کی مستحقش هست نیست خدا میدونه چطور بده ولی کن آیا اون مخلوق از علم غیب با خبره؟ آیا اون مخلوق مثل خدا میشه و می‌بینه اون چیزی که ما در مخلوق می‌بینیم در یک آن نمی‌تونه خیلی سخت براش که دو نفر رو با هم بشنوه شنیدن خدا کجا شنیدن مخلوق کجا لیس کَمِت رِشی و هو السمیع البصیر هیچ کس مثل خدا نیست کسی که میاد صدها نفر هزاران نفر سر یک میشن یک آن در یک جا از اون مرده میخواهن این در صفت شنیدن برای خدا شریف قائل شدن اون صفتی که خاص خداونده که همه جا و همه کس را بشنبه دارن اون مخلوق رو شریکش خلال میدن در این صفات. رحم خداون؟ اون کسی که میاد از غیر خداون میتلبه آیا توجه داشت این قضیه که هیچ کس رحمش لطفش مثل خدا نیست رسول الله صلی الله علیه وسلم مادر اینا میبینه بچه به دستشه به صحابه میبینه آیا توقع دارید شما این مادر بچه شو تو آتش بندازه؟ گفتن نه فرمودم خداوندم همینطور رحمش قابل قیاس با این مادر رحم داره دوست صدر شما در آتش بیفتید رحم داره رحم خداوند قابل بست نیست با این مخلو... با مخلوق والله لطیفون بعباده. عباده نص داره خداون بندگانش از لطفش اینه که چشم به همه ایمه داده هم به مشرکش هم به مسلمونش گوش داده که ببینیم بشنبین گوش و داده به اون زبون داده به امون قلب داده به امون این همه نعمت ها هست این همه رحمت خداونده محتاجی مون قرار نداده پس رحم خداوند قابل وقت با اون رحمه که توی قبل خوابیده قابل قیاس است. ما وقتی که بیام از اون مرده بخواهیم یعنی اون مرد رحمش و لطفش در حق ما بیشتر از خدا یعنی اون بیشتر از خدا بند مهربان به نصفتی به ما شفقتش نسبت به ما بیشتره خیر حاشا و کلا. اون قد که خداوند هوای بندگانش رو داره به فکر بندگانش هست هیچ مخلوقی نمیتونه اونطوری که خدا هست باشه نه در شنیدنش نه در دیدنش نه در رحمش نه در لطفش لیست که مثل ایشی هیچ کس نیست وقتی که ما میریم از مرد میخواهیم طلب ازش میکنیم صداش می‌زنیم. یعنی اینکه خدا را با اون مخلوق شریق قرار دادیم در این صفت ها ما کفتیم آیاتی که در این که خدا را قبول داشتن زیاده ولی شبهشون در اینه که ما ناپاکیم شاید خدا صدای ما رو نشنوه شاید خدابند مهرش و لطفش در حق ما نباشه به ما مهر نورزه به خاطر همین رفتن یک کسی را به قول خودشون در نظر گرفتن که اون شخص بهشون مهر بورزه به خاطر که اون شخص را دوست داره. و تو قدر خدا را دوست داشته باش تا خدا به تو اممه ببرده با تو مهربان باشه و من الناس من يتقذ من دون الله اندادن اندادن نت خدا را قبول داشتن. ولی چیکار میکردن نت شریک قرار میدادن و من الناس من يتقذ من دون الله اندادن يحبونهم كرحب الله مثل خدا همون طور که خدا را دوست دارن اون مخلوق را هم دوست دارن در محبت يكسانه شون قرار دادا وشويدا ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وناليك ايمان دران حب شون نسبة بالله بأ شديدتا وقبيتا رسوسك وولا قياسيس والمؤمن حب مطلقش رباري القدا داره داده بعد جلسي آيان داد بحث حب في الله وبغض في الله ولا أبراره انشاء الله توزيخ آهيم داد. اون چیزی که اینجا مطرحه بعد از این که دونستیم خداوند خالق و رازق و حق عبودیت را به گردن ما داره حق این که ما رو بپرستیم همچنین از حقوق خداوند اینه که ما باید بدونیم کسی برای خداوند شریف فائل نشیم نه در ربوبیتش نه در اسماء و صفاتش و نه در الوهیت یا عبودیت در عبادتش توفیق عبادت نه شریک قرار بودیم چه اون میخواد اون عبودیت نماز و روزه باشه صدقه باشه و نذر باشه چه اون میخواد؟ اون عبادت دعا باشه همونجا که در حدیث مده گفتیم دعا خود عبادت است دعا عبادت دعا هو العباده خب این خلاصه بحث امروزیمون و آخر الحمد لله رب العالمين و صل الله علی محمد و آل محمد